فصل 11 وقتی به بیت فاجی و بیت انیا در کوه زیتون که نزدیک اورشلیم است رسیدند عیسی دو نفر از شاگردان خود را فرستاد و به آنها چنین دستور داد به ی روبرو بروید همین که وارد آن شدید کره الاغی را در آنجا بسته خواهید یافت که هنوز کسی بر آن سوار نشده است آن را باز کنید و به اینجا بیاورید. اگر کسی پرسید چرا آن را باز می کنید بگویید خداوند آن را لازم دارد و او بدون تأخیر آن را به اینجا خواهد فرستاد. آن دو نفر رفتن و در کوچهی کره را دیدن که جلوی دری بسته شده بود، آن را باز کردند. بعضی از کسانی که در آنجا ایستاده بودند به آنها گفتند، چرا این کرعلاق را باز میکنید. آنها همانطور که عیسی به ایشان فرموده بود جواب دادن و کسی مانعی ایشان نشد. کرعلاق را پیش عیسی آوردن و لباسهای خود را روی آن انداختن و او سوار شد. عده زیادی از مردم لباسهای خود را جلوی راه عیسی انداختن و عده هم از مزاره اطراف شاخ و برگ درختان را بریده جلو راه او میگسترانیدند کسانی که از جلو و عقب به دنبال او میآمدند با فریاد میگفتند مبارک باد آن کسی که به نام خداوند میآید فرخنده باد پادشاهی پدر ما داوود که در حال آمدن است خوشا구나 از عرش برین عیسی وارد اورشلیم شد و بعد به معبد بزرگ رفت در آنجا همه چیز را از نظر گذرانید اما چون دیر وقت بود، با آن دوازده هواری به بیت انیا رفت. روز بعد، وقتی آنها از بیت انیا بیرون آمدند در بین راه عیسی گرسنه شد. از دور درخت انجیر پر برگیدید و رفت تا ببیند آیا می تواند چیزی در آن پیدا کند؟ وقتی به آن رسید، جز برگ چیزی ندید چون هنوز فصل انجیر نبود. پس به درخت فرمود، دیگر کسی از میوه تو نخواهد خورد و شاگردانش این را شنیدند آنها به اورشلیم آمدند و ایسا وارد معبد بزرگ شد و به بیرون راندن بازرگانان معبد و مشتریان آنها پرداخت، میزهای صرافان و چارپایه های کبوترفروشان را به هم ریخت. و به کسی اجازه نمیداد که برای حمل اجناس از صحن معبد عبور کنند. او به مردم تعلیم میداد و میگفت آیا کتاب خدا نمیفرماید خانه من نمازخانی برای جمیع ملل خواهد بود؟ اما شما آن را کمینگاه دزدان ساخته اید. سران کاهنان و ملایان یهود که این را شنیدن در صدت برآمدن راهی برای از بین بردن او پیدا کنند. آنها از او می ترسیدن. چون همه مردم از تعالیم او حیران بودند در غروب آن روز عیسی و شاگردان از شهر بیرون رفتند صبح روز بعد در زن راه آنها دیدند که آن درخت انجیر از ریشه خشک شده است پتروس موضوع را به یاد آورد و گفت ای استاد نگاه کن و درخت انجیری را که نفرین کردی خشک شده است ایسا در جواب آنها گفت به خدا ایمان داشته باشید و یقین بدانید اگر کسی به این کوه بگوید حرکت کن و به دریا پرتاب شد و شک و شپهی به دل راه ندهد بلکه ایمان داشته باشد که چه بگوید می شود برای او چنان خواهد شد. بنابراین به شما میگویم یقین یقیم بدانید که را که در دعا طلب میکنید خواهید یافت و به شما داده خواهد شد. وقتی برای دعا میستید، اگر از کسی شکایتی دارید، او را ببخشید، تا پدر آسمانی شما هم خطایای شما را ببخشد. اما اگر شما دیگران را نبخشید، پدر آسمانی شما هم خطایای شما را نخواهد بخشید. آنها بار دیگر به ارشالیم آمدند. وقتی عیسی در معبد قدم میزد، سران کاهنان و ملایان یهود و مشایخ پیش او آمدن و از او پرسیدن به چه اختیار این کارها را می کنی؟ چی به تو اختیاره انجام چنین کارهایی را داده است؟ عیسی به ایشان فرمود منم از شما سوالی دارم اگر جواب دادید به شما خواهم گفت که به چه اختیار این کارها را می کنم؟ آیا تعمید از جانب خدا بود یا جانب بشر؟ به من جواب بده. آنها بین خود بحث کرده گفتند اگر بگوییم از جانب خدا بود او خواهد گفت پس را به او ایمان نیاوردید اما اگر بگوییم از جانب بشر بود آنها از مردم می‌ترسیدند چون همه یحییار را پیغمبر میدانستند. از این رو در جواب عیسی گفتند ما نمیدانیم. عیسی به ایشان گفت پس من هم نمیگویم به چه اختیاری این کارها را می کنم.